و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولا عصى ذنبا عادا اسمعني اللهم سلام جميل مشهري الرحمن رحمتی رحمتك يا ارحم الراحمين بحث راج اجماع بود و بعد از تعرض به کلمات اهل سنت متعرض وضعه اجماع در مجموعی نصوص و فتاوای اصحاب شدیم بحث نصوص رو تمام کردیم که چه مقدار در این نصوصی که ما داریم اصطلاح اجماع یا حدیث دارت اجتماع اممت علا خطر به کار شده. بشده و در بحث فتاوا هست بعد از قیبت صغرا یا حتی در ایام قیبت صغرا ما این اسطلاح اجماع رو در میان کتاب های اصحابی که ما الان داریم نمی بیریم البته خب در همین مدت ادهی از کتاب اصحاب ما حتی بعد از این هم جنبه روایی رو کافی دیگه تردیلیتا کتاب های بسه کافی تغییر اجماع رو به کار می چون روایات رو برمی کن. اما تردیجن با فاصله گرفتن از قیبت صورا و غلوب در قیبت کورا ما تدریجا در مکتب برداز اصطلاح اجماع رو می‌بینیم. اول وقت که به نه به تعبیر بعضیشون جمعی متکلمی محبون شیف نرسین جمعی متکلمین محبونت ها محایل محبون به خودجیت اجماع بودن نصف جمعی نبوده اما خب، بودن دیگه به معنا که مثلا زادری ها اجماع اصحابه رو فرد مالکی ها اجماع اهل مدینه رو فرد دقیقا همه که ها هر مسئله اجماع یه مسئله جا افتاده مطرح بوده در اون زمان مخالف رو هم دو سه نفر نام برده مثل نظام یه که نفر یکی که از هستن که کاملا معلوم و بحث بحث کلامی کردن به اینجا رسیدیم که ما در مکتب وقدار هم در فرم مثل کتاب مظموم شیط توسی یا کتب سید مرتضی رحمه الله و هم در اصول مثل زریعه تا تیوزشون زریعه از روز که در قده شیخان نگاه کردن تو جنده دو بهشون بحث اجماع رو دارن اما برون تفصیل سید مرتضی نیست چون سید مرتضی قیلی در حجته شما قده از خروع اجماع رو طبق نظرات احلی سنت مطرح کرده این خروعی که احلی سنت دارست مرموم شیخ اینها نیابده در خود اینها اینها نیابده احتمال هست علی علم و با این که مرموم شیخ وفات سلمانزا در کرده من جایی درم نوشته شده که تا آخر اومش درس سیل احتراما حاضر میشده من صحت هت و و این مطلب که این تا آخر اوم مرموم سیل شده شیخ وفات مرموم شهر توسید قدس الله ها نفسه ایشون 408 واضه بغداد شدن یعنی وقتی که ایشون در بغداد بودن 28 سال بعد از عروضشون مرموم سهرمازا فوت کردن اگر این طلباشی ایشون تا 28 سال بعد از فوت 23 ساله بودن وارد بغداد شدن حدود مثلا پنجه یکی دو ساله بودن که هنوز در تو سید مرتزا میرسن که خیلی هم بری جمیل من خودم مستنطاریخی نیدن شمیدن فکر نمیکنم سه حال سید مرتزا حدود سی, سی کتاب از رو میده دیدون شیخ ظاهرا ظاهرن ولی علم از ذریعه رو قبل ردنی که پرش بشه چون کلمات سید مونزا در دست دیده مطالب سید رو از درس آورده و احتمالا شیخ الهده رو قبل از سید مونزا بیرون داده گاهگاری دا کلماتی رو از سید مونزا نرم میکنه که الان در ذریعه نیست که احتمالا از درس مزمون سید مونزا باشه حال این دو کتاب یعنی الهده و از ذریعه به عنوان دو کتاب اصولی معروف از در بغداد مطرعه حالا من چرا این بحث مطرح مطرع کردم چون معتقب این که در قوم از هری ما, ما نمی در کلمات مثل شیخ صدوق و بزیگران به خلاف بغداد. در بغداد اگر بخویم و بعد در شیعه کلن اگر بخویم به دقیقتری بررسی بکنیم باید تو دو محور کار بکنیم نه تو یک مهور یک مهور بحث های کلی و اصولی یک مهور بحث های و فکری این دو سان باید از همدیه دیگه تفکیق بشیم. و ترجیب اینه که هر دو هم در مکتب بغداد شروع میشن یعنی هم تو بحثه اصولی تو مکتب بغداد شروع میشه هم تو بحثه تطویقیش مثلا این شیخ توسی در کتاب خلاف کرارا میگه دلیل اجماع و انفراده شیخ سید المتوزا که در کتاب فرس انتصاری که نوشته ایشان تماما هر جاید که میگه مثلا شیعه قائل از بگه منفر یا شیعه یاد من مازون نه انفراده و میگه دلیل اجماع و متکمه یاد اجماع و کتاب یعنی محموم سید المتوزا هم تو بحثای کبرهی و کلیشون مفصل تو از در متعرض اجماع و تو اشراپی متعرض اجماع شدن هم در برسای تطبیقی در فقر زیاد اجماع رو بوده. چون این هر دو یعنی محور کبروی و محور صغربی هر دو در بغداد بوده قاعده اختضام میکنه که مثلا به کلام رو روی رو هر دو جداگانه در بغداد قرار بود اما به لحاظت کبروی تا اینجا یک ای مقداری شوشن شده این, بیشتر این همهت ما یه جهات کبروی بود یه جهات کبروی معروف شد که در مکه بغداد اون زمان مسئله خودجیت اجماع کاملا جا بود هر از این که ادامو کنید و خیلی هم عجیب شیخ مخالف نقیه می‌کنه. میگه زهرم متکلمی کل هم و فقه ها به اجوریم را خودجیت اجماع که نظام چون مثلا نظام رو جزو فقاه ها متکلمی به حساب نه و دو نفر دیگه را نهار میکنه این که میرونی برانصورت نهار و ای ای که این که که هر دو از معتظرن از روزان معتظرن نظام از معتظرن و اشکالات و اونها را ارکتر بیوز سنخ بحثی و مفتر و وقت معلوم شد که اونی که ما احساس می‌کنیم احساسی که ما داریم اینی که البته شیعه به لحاظ مناقشه در دلیل از الگهی رو که اح که از ترین دسته محور اساسی میمونه یکی آیات مجموعه آیاته یکی مجموعه روایاته یکی هم حکمه هست که دیگه اینها رو از کلمات قضالی به نحوه دسته یعنی جمع دسته بندی شده نقل کردیم اصلا شیخ در همین بحث قده که اینوز من تمام بحث اجماعی برای نگاه کردم حدود همون هفت سفر هفت سفر شد بیشته. روی آیه و منیت به غیر سبیل المؤمن اشکال پشت سر اشکال اشکالات متعدده ولی از اشکالات یعنی اشکال که این شما گفتین باز کردن کنه چون اصلا به نظر ما استدلال خیلی ضعیفه تا جایی که مثل قزادی میگه به نظر من دلارت نداره آیه <تصفح> را به جواب نداره اصلا نمیخواد حالا شیعی خودمون رو خسته بکنه غیر از چند تا جواب ما از خیر روایات شیخ به اون تفصیلی که احل سنت نمیشتن وارد نشده انصابا سید معتضا بیشتر وارد شده راجی با حقیقتم نوشته نمیشتونم اشکالی که در حقیقت شیعه بغداد میکردن شبیه همین اشکال معتضله بود نتیجه چی این بود؟ خب دقیق بکنی؟ اشکال شیعه بغداد و معتضله یکی بود؟ چون گفتن آیات دلالت نمی کنه روایات یا ذریع خستنده یا دلالت نمی کنه حکومه اولین پکابی نیست این اشتباه موزاتن بگیین که مثل خبرواهد که ادهی از معتظره می گفتن مستحیله تو اجماع هم ادهی بگفتن مستحیله که تقریب شودنش لذا در بحث کبروی خلاصی بحث اینجوری بود که یک آیا اصولا تعبد به اجواء ها معقول هست یا نه خب اهل سنت مورد معقوله بعضی از معتزله گفتن معقول نیست ظاهرا از کلمات مرحوم شیخ اسلمی در اون که نه استحال نداره معقول معقوله معقول معقول و راه بنف از اون اشکالشون که شما سخت تا جایز الخطا رو هم میذارید چطور در خاطر می گیرین غیر جایز خطا؟ اون امامیه شیعه خیلی راحت جواب دادن. گفتن آقا ما 99 تا جایز خطا بودشیم به اضافه معصوم اون غیر جایز خطا. نتیجه میشه غیر جایز خطا. خاموش. اون یه خیلی راحت یعنی جواب شیعه از اون مشکل عقلی روشن خود اهل سنت دو تا جواب اساسی میشه از طرف اونها داد. و کار به خصوص یکی این که این اشکال انظر عقلی درسته یه انصر غیبی میاد او رو ایرشای از خطا میکنه ولذا اگر به ناویون باشه مثل من به دقت نخوندم اما شاید اشاره روایاتی که نقل کردن دو محتیم داره یه محتیم اینه ناومتی لا تشتم اومتی علا خطا علا زراده یه محتش اینه سأل طلا ان لا یشم اومتی علا خطا سأل طلا من از قبل قبل. این سالتالله یعنی اون انصار غیبی میاد این رو غیر جایزان رو شد شد پس یک جواب اینه حالا این جواب رو به انهای مختلف میشه تصدیر کرد که یک انصار غیبی رو اشکال به لحاظ علمی محفوظه مجموعی جایز الخطا رو نمیشه بگیم غیر جایز الخطا لیکن راهش اینه این یه راهی بود که اونها گفتن یه دامه دیگهش که عرفه این سلمرزا معتقده و ظاهرم مراد خود اصولین و متقلنه هسته و اون این که درسته اگر مجید کل وارد جازال خطا باشه در مجموع هم جازال خطاب باشه لیکن پایینه چون نسبت پایینه امکان جلب و جیت هست تو فرقش همید چون نصبت پایین اگر نسبت پایینه نبود مثل مفردات بود ولی اشکال مفردات پیش میاد اما مفردات اگر فرض در کل واحد در بین قدما فی نقشه 60 درصد احتمال خطا باشه وقتی مثلا به 100 درصد در قائل بشن 100 تا تغییج جمع بشن و معارضی یعنی هم در بین باشه احتمال خطا میاد پایین میشد 4 درصد 5 درصد میاد پایین نگذریده میشه وقتی احتمال خطا از این جلوه جدی میشه مشکل نداره اینم دو نمیده لكن... نه هستن حجیت جب هستن یعنی ممکن اشاره یا حجیت جعل حجیت میکن یعنی اون سوال چطور برای کل واحده جعل حجیت نمیشه، برای مجموع میشه یا شیم کل واحده نسالش بالاست مجموع نسالش پایین میشه برای کل واحده جعل حجیت نکنه اما برای مجموع جعل حجیت بکن راست هم هست, هست انسان احضان اقلایی هست این بی نهایت لحظه ده، پس این مشکل رو میشه حل مطلب دومی که پیش میام یعنی تا اینجا این مطلب شد که آیا امکان جعل و جیت برای اجماع اولامه، اجماع فره ها، اجماع نظر متخصصین، پس که اجماع اولامه اقتصاد در یک برنامه اقتصادی، آیا احتمال امکان جعل و جیت هست، بله هست مشکل نیست؟ یک اشکالی که باز اونا زیاد داشتن این که اجما محقق نمیشه چون دنیای اسلام کاملا متفرقه خب اینم ارز کردیم این خیلی مطرح شده سیلوزان مطرح کرده غزالی هم خوندیم که آبدا که نه امکان داره ارتباطات داره خبر میرسه الان آخر بحثه که چون بحث سغربی شما مطرح نکرد. اما شیع در اینجا راحت تر بود چون شیعه آمد گفت ما خیلی دنبال این نیستیم که اجماع تمام علمای اهل سنت ببینیم اجماع علمای خودمون. حتی ارز کردم مثل مرمونهای توستهی نویست از نه اعتبار ندار نه مذرق به اجماع نیست شیخ توسی هم نگاه میکردم امروز ایشون نوشته اقوال اهل سنت مذرق به اجماع در اصول نیست رو خیلی توضیح نداده مثلا اگر مشغور علمای اهل سنت شد که امامت جزو اصول دین نیست این مذر نیست به اجماع چون میگه ما قطعا در مسائل اصول با اونا مخالفیم قطعا جبهت مخالفت اهل سنت در اصول با ما مضر به اجماع ما نیست ما اجماع داریم که امیر المومین سامالالله علیه خلیفه هست. بلکه نفس رسول الله بعد رسول الله هست. خب اونا یه اتفاق هم در خلاف ما این مذر نیست مرحوم شیخ سیسی اینجا شد مرحوم های دستری کلن یه از <مزلن> هم مزرمون نیست یه از هم مزرمون نیست حالا به هر حال مرحوم شیخ سیسی از این را پس یه بحث راجع به تحقیق اجماع طبیعتا ما اگر اجماع رو محدود به طاقه کردیم تحصیل سقراش سنتره تا اهل سندن طبیعتا دیگه چون اهل سندن یه عرض عریضی داره همین همه همه از شمال آفریقا و هنگ و پاکستان از عربی خیلی عرض عریض داره اجماع علما بشه اما شیعه خواهی نخواهی محضوطتر ایفانه اطلاع اجماعی اجماع بر اجماعشون خیلی مشکل نداره این هم مشکل دوم بود که اینها از این را جواب داشت پس اشکال جواب اول است. جواب مکتب سبم مکتب سوم اساس برس بود آیا عدلهی بر جعل حجیت داری یا نه بعد از این گفتیم امکان داره امکان همین بحثتر اولیت علمای شیعه مثل منو سلمون را شیف مفید و شیف توسیدی به تفصیل باز شدن اینا گفتن نه دلیلی بر جعل حجیت نداریم خب دقیقه نه. امکان داره دلیل نداریم پس تو بحثای کبرهی شیعه نظرش این شد امکان جعل و جیت هست اما دلیلی برش نیست چون دلیل یا آیات کتابی که اشکالات رو گفتید یا روایات که اشکالات دیگری داره یا حفظ و عقل کنم مشکلن در مشکل پس اشکال شیعه این شد و فرقم نمی کنه اجماع علمای اهل مدینه صحابه بله اگر صحابه مثلی رو گفتن که کشف بکنیم قول رسولان رو بله ممکنه و لذا این نه این طور دارن بعضی از صحابه مثلا کنا نفعلو فی زمان رسول الله کار کردن صحابه گفتن کلنا یعنی همه ای صحابه نقل از رسول اما اگه بعضی کانه کان احد ونا یا یکیشون میگن من وقتی این کارش می کردم میگن اگه به من میگی من است که همه ای صحابه کما اینکه اگر فتوا نقل کردن گفتن فتوای ابن عباس و فتوای عمر این بود میگن اینم کافی نیست یعنی آمدن رو اون تعاویر برس کردن اگر کنان نفسل مثلا بود این رو میگن حاکی از رسول الله اگر میگه من این کار کردم این حاکی از رسول الله نیست اگر فتواه فتواه ابن عبادی این بود فتواه عبدالله مسعود، این بود فتواه بلانه این بود اینم هم کاشف از رسول الله نیست اجیبا اصحابه با عنوان فتوا این کاشف نیست به خلاف ظاهری ها پس رأی شیعه چی شد از زمان شیخ طوسی که ادلهی شما کافی نیست این ادلهی رو که اقامه کردی کافی نیست بله خصوص صحابه اگر ثابت بشه همشون گفتن شیعه ما شیعه قبول میکنیم به عنوان اینکه امیرالمومنین در اون زمان بوده نه به عنوان صحابه اگر اجماع اهل مدینه را مالک ادعا کرد ما این قبول بکنیم به عنوان وجود امام صادق در بینمون یعنی شیعه آمد اون مسلک خودش رو در تمام این فروهر حرک کرد پس شیعه آمد گفت ما دلیلی بر حجیت اجماع به ما مثلا طبق نظر مالکی ها همین الان فوقهای مدینه اتفاق بکنن، یعن هجازه خبر نظر ما دیگه الان ارزش ان امام صادق خودش داشت الان دیگه ارزشش نداره روشن شد؟ اونها میگن همین الان تو غوای خصو خصوص غوای مدینه, مدینه. اتفاقی برای یک طرفه کردن حجت است پسوشو نمیدونه ما دیگه. لكن شیعه چون رفع مسئله کسر محدودش میکنه میگه اگه زمان امام صادق بود یا اون شب نجف هم یکی از ائمه ای که در مدینه مسئولیت بود و آرا و مورد عنایت بود که دستان یعنی مانعتی ممانعتی نیمی کرده مردم مراجعه بهشون میکردن مثلا حضرت امام حادی مدتی هم خب در مدینه بودن شاید تا تعلیم امام عسقیم در مدینه باشه علا خلافه که در سامن را بود یا مدینه ظاهرم مدینه باشه حضرت حادی با امام عسقیم تنبیش شده خب اما شواهد نشون نبیده که امام حادی در مدینه مرد مراجعات مردم بود به خلاف ا امام علی در زمان خودشون در مدینه نه به عنوان اون فقط فقعه شیعه بلکه یک فقید مطرح میشد. اثر ابن حجر در تهذیب و تحذیب بروزه که علی بن موسی 20 ساله بود و در محصول نبی فتوا میداد. یعنی که persian اون شیعه این رو با عنوان فقیه، فقیه از رسول قبول و مدینه به عنوان یک فقید فقيه از اهل بیت رسول الله قبول باشه. و مجلس مدینه یعنی به اسلام مثلا پوشو توی تلویزیون مثلا کانال اول به صلاح فقط معتقد مثل لغین هست، سیمال مثلا اینطوری بود خب چون این عمومی بود دیگه در جای مختلف دنیای اسلام می نه محدود به یک مذهب نبود دقیق میفهمی؟ مثلا خاصن میشه از شده که معمون لرضا یعنی مرضی دوستو میگه احتمال داره پیشروالی که ما که القا با طرف خداست لیکن به هزار رضا به لضا اونام چیه نوشته اون رضی نوشتن فکرم رضی درست باشه ما رضا طرف بازم معلوم مثال اون نوشته اون که رضیه با و علیق نیست. و چون خلف های بنی عباس رسمشون برای این بود که بعد از اینکه خلیفه رو معیم میکرد یا ولی عهد یه لغبی هم برای اون میگذاشتم از کنم معلوم هارون سه تا پسر خودش رو اون پسر بزرگش رو. بنا محمد بالقب امین دومی عبدالله بالقب معمون و سومی قاسم بالقب معتمن یعنی وقتی ولی اهل میاد یه هم بهش داده. ظاهرش اینه باید میکنم. برای داره من ای هم. حالا من عرض می برای من که من دیگه میگم شما مخالف حالا اونی که بحث ظاهر بحث صحنه خارجی چون از اعضای سنخ خارجی معمون ایشون رو آورد ایشون با معمون بود ظاهرش اینطور بود دیگه بعدا ولیعهد ایشون شد دارن که اگه معمون فوت ایشان خلیفه مسلم بشه ولی ولیعهد شد حالا که روایت ما داره که از جدا بودن راضی نبودن در ارتباط تقرر نمی‌کردن اونها خودش اما ظاهر شکل سیاسی که می‌خوام بگم ظاهر شکل سیاسیش تجار از سلامی خلیف بنام ولایت معمون بوده، و اون بعد از این که با عنوان و و به عنوان ولایت وکناه و ظاهرا لقب او به رضی مثلا رضی بشه، رضای بشه. که بعد اینا مثلا ممکن بود بعد از خلافت الها در از اون، مثلا این المعتصم بالله باشه. حالا ما بحث ما را زمین بحث نشیم. پس بنابر این شیعه در بغداد وقتی که این مسئله مطرح شد، به لحاظ کوروی این بحث و که ما دلیلی برای حجیت اجماع نداریم این خلاصه لیکن امکان جعل حجیت داره امکان داره که خداونده متعالیم خدا دخارت بکنه پیغمبر بگه امت من در این درجه بالای از وقت فهم و شعور هست. اگر اتفاق کردم اتفاقشون متعالیم این امکان داریشون مشکل نداریم اصن هیچ مشکل خاصی نداره مشکلش کجاست دلیل برش نداره نمیخواد با اصول غیبی هم دست بزنیم نمیخواد بگیم خدا آمده خلق اینا رو داشته که در خاطر اینا نمیخواد بگیم آنها میگه خبر واقع حجت میگه میگم خدا متو طرفو قرار ده. تفسیر غیبی نمیخواهید بکنیم بکنه خلاصه نظرشی این شد که ما نیازی به تفسیر غیبی نداریم با همون وجه ظاهری میشه باشه اما دلیل نیست اون چیزهایی که شما دلیل بردین اینها کافی نیست شما با نه با م... این به عنوان اصلا مصدر تشتیشاره برای چه میکلون این فیلمسه مشکل نداره ها به اتفاق کردن شما مکلف این از اتفاقونا پیرای بکنید این چه دلیل نداریم دلیل نداریم این یک دو ما چطور اصول مذهبه ما این است که پیغمبر طبق نحس معکل اصولا از اولی که قرآن بر اکرام و اندر اشیاطی الاغربین بحث ترح نبوبت از همون جا هم ترح ایوکم یوبایونی علا آداله ام علا انیوکم وسیع و, و خلیفتی من بعدی یعنی همراه با ترح دعوای نبوبت ترح دعوای وسایت به امامت هم بوده این همجور ادامه داشته به مناسبت‌های مختلف یکی در اول یکی هم در آخر که قبیره چیگونی تصریح با امجه تره بلایت در قبیره افتداعش در همون یومد داره این تفکر شیعه لذا شیعه میگه اگر شما میگید پیغمبر فرمود لا تشتم و اممتی علا قبوله چون همون پیغمبر فرمود در اممت من دائما امام برسوم هست این دوتش شما بیا این طوری که شما برنا کردین امکان داره اما واقع نیست اونجوری که ما معنام میکنیم هم امکان دارم واقعی هیچ مشکل هم نداره یعنی نصوص رو که با هم جمع میکنیم اینطور بیشه این میتاکن کتاب الله و عطرتی اهل بید و انه همان لن یفتر قاحت تا یاد علیه لن یفتر پس اگر مادام که قرآن هست عطرت هم هست و مادام که عطرت هست ما در امت دائمن امام معصوم داریم اگر لا لاش سما امتی در حیات ماذ ائمه است نه امت به ماهی امه خب اینم فرشیه این نظری بود که شیعه برای حجت یعنی در حقیقت اگه دقت بکنید با قبول این که مثلا تو ذهن ها بود که همه علما اجماع رو قبول دارن شیعه قبول ندارن گفتن ما قبول داریم ما مسئله که ما تفسیر خودمون رو داریم شما یه تفسیر داریم ما تفسیری خودمون داریم لذا هر قبول قابل اجماع رو بود از لحاظ کبروی رو این معنا پیش کشیدند معنای بعدی هم نیست سوفن حال مبنای اولیه مشکلی که در تا اینجا روشن شد این مشکل شیعه با علمای سنی مشکلی که بعد پیش اومد چون تو بغداد خب بالاخره علمای شیعه در مقابل سنی بودن با خودی شیخ از بغداد درست ایشان به نجف نجفی که نبود شیخ گفت روشن هر معنی رو معنی بود چون این حرم نزدیک که کوفه بود مثل جنکران سالورن که آدشون باشه دوربر جنکران چیز اونجا چه جدی معنی بود این دور اون نزدیکش بود خود حرم چیزی دورورش نبود شهر کوفه بود در کیلومتریش بود و کوفه خیلی آواز بود مردم شیخ اصلا رو داشت یعنی چادری از بالا زیر پای خوشه کلیه رمومی که اگه وقت نماز می رو به حرم رو به قبر علی سنجی کردن مقصد شیخ طوسیه، اونیکه مشرف شده، مسجد شیخ طوسی، منزل شیخ بود اونجا مغدارش. مغدار شما میخواست. همونجا دست ایشون. لذا ایشون دهستان به نباید گفت به نجر، نجری نبود. هر آدمی که اونجا فلان اندی شده، خونه ساختن با پسراشون، با پسرشون مصعب و علی مفیدسانی و بعد از دی از شاگردها تدریجا دروغه اونجا خونه ساخته شد، شد نجر. اصل شهریته نجف با آمدن شیخ شهریت به این معنا قبل از او چیزی نبود چون ندیرش کوفه بود دیگه بعدم اگر مناسباتی می‌شد زیارتی خواستنش اون قله ماها ما ها دست و, و خیمه و چادر اینا می‌زدن دو سه روز, روز اونجا بودن بعدم متفرد مشن میرفتن خانه نیاز نبود اونجا باشه در حقیقت مرحوم شیخ با حجرتون به جوار امیرالمؤمنین شهر نجف رو هم پایبوزاری کردند هم شهر و هم حوزه با هم دیگه بذات خب طبعا در اونجا که واقع شدن دیگه اون های دعوای بحثای با سنی یا مثلا در کلیله که بعد از نجب یه مدتی انصافا حوزه اله خیلی گرم شد او برقرار گرم یا تدیجان با آمدن مخصوص تفویه در ایران حوزه های شیعه در ایران خیلی گرم شد مثل اصفهان و دیگه خیلی حوزه های علمیه گرمی با وجود علمای بزرگ فلاسفه و, و محدثین و علمای واقعا خیلی فوق العاده است پس دوران صفویه که از دوران پرخیر و برکت به لحاظ هم و هم بلاز تذیکار امسال اسفار و وافی و ندون بهار و وصائل و خیلی کتاب در این دوران به اصطلاح حالا وقتی اگر دوران حساب شامل کسانی که این دوران بودن دلو بیرا نمونن مثل شهید سانی و مدرسه سانی که ایران محقق اردبیلیو انصافا ما در این دوران از سالهای 920 به بعد تا سال 1000 سد و سی و پنج بعدش هم نادر آمن انصافلی که از دوران پرخیر و برکت امیه شیعه حساب میشه خب دیگه خایی نخواهی بحث ها افتاد تو جامعه شیعه دیگه اون سنی در مقابل شد بحث ها دیگه برداد نشد وقتی بحث ها افتاد تو جامعه شیعه مهمان نباید شدیه مناقشه در خوده بود که مناقشه کردن در مقابل ا گفتنه آیا اجماع چون کاشف از قول امامه بعدها که در بحث خودمون در این قسمت اخیر شد کاشف صدر کشفش چیه؟ چیجوری کاشفه؟ این دربا دارست کرد این انصافه در عبارات از ما اینجا مطرح داشت خب مطرحی که شد به حساب رسمی چهار و چهار نقطه گفته شد یکی اینکه به نحوه لطف کاشفه یکی اینکه قواعد رزق باشه یکی اینکه چون می‌دونیم امام داخل در راست یکی اینکه یک حدس و هست که اگر مجموعه علمای عقل باشن با رئیس مذهب موافقا یه رأی دیگه میگه که هیچ هیچکدوم از این سرای درست نیست لذا اجماع خاصیتی هم نداره خیلی حالا زور زوغه مندن خوبی برای یک زنگ خوبی است آدم به هوش میاد هوا جمع بکنه توی مسئله قبل از اینکه نگاهو به اجماع هست. عمول بیشتری بکنه اما اینکه حجت باشه نه چون هیچ نهرو از کش نداره پس بنابراین مجموعه آراایی که بین شیعه به لحاظ کبرى مطرح شد ان فکر میکنم روشن در اول در بغداد در مقابل اهل سنت مطرح شد بعد که همون بزرگانی که مطرح کردن شیخ تولسی افتاد به زاوی شیعه یعنی در بیهقی قرار گرفت که شیعه بودن بعد از زمان شیخ دیگه همیشه تقریبا نادری بوده تقریبا آراء علمای ما بین خود و علمای ما بوده حالا مرحوم ابن المتحر یا علامه علی رو حتی حالا سنوزم و وحاوی ها, ها، سونی های متأثر هم دیدن ابن تایمی هم دیده رد میکرده حتی ابن تایمی هم دیشونو ابن المنجس میگه که تو که در مکه با ظهور میشه خیلی بحث علمی میکنه خیلی اندیشوی معاصر میشه میگه شما کی هستی میگه تو گفتید یه دین اونجا قراره ببین که از مضمون علامه یه مقدار افکارش طرحه ولی غالبا دیگه افکار علمای ما در طرح مستقيم با اهل سنت نیست این 30 40 سال اخیر هم که امید بود که بیفته به طرح مستقيم با اونا بازم نشدیم هرونزم باز ما در مجموعه خودمون داریم کار میکنیم هرمز از اون مجموعه خارج نشد مثل بغداد زمان شیخ توسی یا سیده منتزا توی اون مرحله تره اجماع به اون سورت درس کردن توی این مرحله تره اجماع به این صورت شود. و توی یه مدت های زیادی انصافن حالا یا میگن چون مغلد شیخ توسی بودن یا عظمت شیخ توسی و عظمت سیده منتزا اختزا کرد که این بحث یا بیخته اولین بار هم اوایل قرن 11 توسط اواخر ملا محمد امین مناقشه شروع شد این شیء بود اخباری ها صفر چشیدی که اجماع خب وجه حجیت پس معنا معلوم شد وجه حجیت سابق با اهل سنت یک جو بود و لذا با اونها مناقشه بکنن مناقشه کردن با کلمه که مربوط به اهل سنت ده. نه در شیعه مخصوصا بعد از خروج شیخ از برداد دیگه بحث های به اصطلاح ما مقارن یا اصول مقارن یا اصول خلافی مطرح نشد این افتاد تو دنیای شیعه پر تو دنیا شیعه افتاد خب دقیق بکنید زاویه بحث عرد شد دیگه بحث امکان و استحاله و حدیث لا تشتمه صحیحه روشن شد اون بحث بحث شما که شیخ طوسی و سید مرتضی می‌بینی اصلا با بحث‌های اخوی کلا فرق داره اخوی اصلا بحث نداره این سرش چیه تا یه بحث کوبریمون سرش اینه که گرای بحث کلا اولش بود در زمان شیخ طوسی و سید مرتضی می‌خواستن اصل مطلب رو ثابت بکنن و اون اینه که اجماع حجتشون هر زمان امام معصوم هست این اجماع کاشیف از قول ایمان باز بعد ها چون این نزار در مقابل ما سنیا بودن دیگه بعدها اصلا این نزار دیگه مفروغان احنش شد یه احنشتان در مقابل ما نبودیم که شما نگاه که آره خودی متعرضی آرا متعرضی هم آره داشتن یه قلم های در هم در مقابلیشون نیست لهم یک طبیل معمولی متعرض نشدن آید فرس حدیت لاتش اصلا نحوه بحثی بود که در قده یا در ذریع بحث بود اصلا یک کلن مثلا کتاب مثل خود برای نمونه برای نمونه ما کتاب های شماتون شما اصلا بحثات نمیگیدی سر این که در بحث ما دارای این تح... تحول شدی سرش این بود در اوائل که آمد در مکتر بغداد نحوه برخورد اونطوری بود بعد با... چون مکتر بغداد منحل شد بیگه شیعه احساس نه که رد میکنه و سونیه شیعه رد ب... و مکتب شد یعنی از اجاهیر قضای اتفاقی از سال چارسد و پنجا آخره چلنه از بغداد در به حرم و, و شدن. تا این لحظه‌ای که من نشستم که هزار سال می‌گذره. دیگه هیچ وقت حوضه که زمان شیعه بود پیدا نشد این هزار سال کلن بغداد علمای خودش رو داشت بزرگانی در بغداد رو اما از بزرگان شیعه اونجا بیان و آزادانه چون هم از برکات یک معنا وجودی آل بود از کردن چند بار آل دقیقا در هزار سال قبل وارد بغداد شده سال 640 هجری وارد بغداد شد. 1400 دروح و س... الان 1400 هجری الان هست. سال قبل از این تاریخ علی بویه وارد بغداد شد. حالا اگر مختصر بیانش شود که چه سیاسی به دست نگیرد، من احتمال خودم می‌دانم این مردی که گفته شده از ها بودن. هایی که آن علی بویه از بودن بود در متأثر در شمال ایران شما احتمالش هم قریب، احتمالش ضعیف می‌ذارم که انصافا احتمالا زیدی بودن بر حال اینا در خلافت رو نساب بن علی دست نذیدن اما تمام وضع جامعه بغداد اون روز شیعه شد رنگ بوی شیعه گیر. و بعد از آمدن طالبوبه انصافا حوزه شیعه که ما اخیرا هم دوم بردار اسمش برشتیم رشد بسیار عالی کرد. من چند بار ارسلان تا این لحظه ای که بنده خدمتون هستند چیزی حدوز فر درصدده موارد دینی ما می حوزه دوم بر داده مکت دوم بردار. از کلام بگیریم از سر بگیریم از سررف معرن بگیریم از حدیث بگیریم از رجال بگیریم از فهرس بگیریم چیزی در حدود فر درصد تا این لحظه ای در خدمت هست هستند بررگوس میشه به این مکتب دوم بردار و از به این مکتب دوم بردار که چهره مثل مرحوم شیخ محید شیخ توسی سید مرتزا و بعد علمای دیگه انصافا خیلی این مکتب رو یک مکتب مثل حفظ ابن بود بعدش منتقل قومی شد. خیلی واقعا برداز یک مکتب تأثیر گذار بسیار قوی و محتدر در نیجه انصافا این رو باید قبول کرد و با کروج هم به این مکتب از اون کارایی خودش افتاد تا این لحظه که های در خدمتون هستن هزار و تقریبا هزار سال قبل یعنی هزار سال در حدود مثلا 26 سال کمتر شیخ توسی که از بغداد در آمد دیگه اون اعظمت و کیان به حوزه شیعه در بغداد بر نگشد. پس بحث اجماع به لحاظه کبرای روشن شد تا قرن پنجم حالت لعوای با اهل صد نداری بعد از او به خاطر این که اصلا وضع کار ما عوض شد دیگه ما اون مقتده به همین زمان خود ما ما مثلا نتونستیم بیریم تو از هر مثلا وجود شیعه تو از هر یه وجود صادق شده باشه ما میتونیم با علمای از هر بحث بکنیم. این با مثلا میخواه میگه اگر این کار شدون ما مثل شکتوسی که ارساوی کردیم اگر ما الان از هر رفتیم جه تو قوم اینجا نیستیم بحث می‌کنیم که از هر باز برمی‌شیم به اون ابحاث یا طبقه به فقیل همون کارهایی که سید مرتضی دو هفته ما انجام می‌دادیم چون بر نگاش حوزه های ما متک یعنی قواهای اصولیین ما و متکلمینی که این به بحثه اصولی وشن بر اون دوران شیخ درس آمد که ظاهیه شیعی بحث کبروی در زاویه شیعه اینطوری شد چی اجماع کارش از قول امامه؟ بگه نه امادن از آیه و روایت و اینها یعنی بیشتر اگه بخوام هم تقسیم بندی بکنم بیشتر علمای شیعه رو اون مسلک سوم چون قضالی گفت مسلکه یک آیه یک که حکم عقل شیعه رو این سه بامی بیشتر کار کن حکم عرد. ما چطوری بیاریم از اتفاق فوقها کشف قول امام بکنیم فرقه انشاءالت فرمه برس داریم.